السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد واسطناء لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا و نشهد لا اله إلا الله وحده لا شريك له و نشهد أن محمدا عبده و رسوله و على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآلِه الطاهرين يا بقية الله في الأراضين نتقرب إلى الله بحبهن والبراءة من أعدائهم السلام عليك يا بقية الله في أرضه وحدهه على عباده ورحمة الله وبركاته اوصيكم عباد الله ونفسي بتكب الله خدش شمار رايت تقباي الهي دعوت میکنم در قرآن کریم روایات محسومین علیه السلام با عبارات مختلفی کاربردها و آثار تقوی رو ذکر کردن از جمله از امیر المؤمنین علیه عليه السلام نقشقی که فرمود التقوی ان یتقی المرعو کل ما یعصد مه تقوی است که انسان از هر کاری که او رو به گناه میکشاند خودداری کنه. ممکن است انسان حرفی بزند که این حرف منجر و منتهی به غیبت شود ممکن است به مجلسی برود که در اون مجلس به گناه کشیده میشه، انسان مؤمن. از گفتن آن سخن و از رهتن به آن مجلس خودداری میکنه. کنه ممکنه حرکتی رو انجام بده چیزی را بنویسد در فضای مجازی مطلبی رو منعکس کند که موجب استخزا بشه حتی که حرمت بشه فاش شدن سر کسی بشه عیب کسی آشکار بشه انسان متقی از چنین حرکات و رفتار و برنامه خودداری می کند بحث تفقیل من پیرامون آیه پنجم از سوره مبارکه ممتحنه بود ربنا لا تجعلنا فطلتن للدین کفرو حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان دعا و درخواست از خداوند میخواهد که ایشان و همراهانشون رو برای کفار موجب فتنه قرار ندهد سخن این بود که مراد و منظور از این فتنه در دعای حضرت ابراهیم چیست با نگاه اجمالی به کاربرد کلمه فتنه در قرآن کریم به موارد متعددی برخورد کردیم از جمله فتنه به معنای آزمایش به معنای آتش و عذاب الهی به معنای شرک و بت حاکمیت کفار به معنای مصیبت و بلا و گرفتاری به معنای شک و شبه و اضطراب در دین به معنای شر و فساد به معنای فرید و نیرنگ به معنای شکنجه و آزار و مانند اینها عکس دوست سخن این است که حضرت ابراهیم علیه السلام در این دعا از کلمی فتنه از میان این معانی که ارز شد چه معنایی رو اراده کردند و از خداوند طلب کردند که ربنا لا تجعلنا فتن للذین کفرود برخی گفتند حضرت ابراهیم از خداوند درخواست داشته که ایشان و همراهانشون رو از شر آزار و عذیت و شکنجه کفار که یکی از معانی فسته بود حفظ کند چون حضرت ابراهیم و یارانشون با کفار به خصوص بعضی از اینا قومخیش هم بودند و نسبت داشتند مخالفت کرده بودند از اونها رسما و قاطعا براعت جسته بودند و لذا احتمال می رفت که اون کفار در صدد انتقام بر بیان به آزار و شکنجه ایشان بپردازند طبق این نظریه حضرت ابراهیم از کرمی فتنه آزار و شکنجه رو اراده فرموده. البته این معنا دور از واقعیت هم نیست که انسان مؤمن از آزار و شکنجه شدن طرف ست ظالمین خوف و حراس داشته باشه. گرچه حضرت ابراهیم در برابر عذیت و آزار کفار صبر و تحمل فراوان داشتند و هیچگاه در برابر آنها خم به ابرو نمی آوردند ولی به هر حال حضرت ابراهیم این دعا رو هم برای خود میخواد و هم برای همراهان طبیعتا صبر و تحمل همراهان به اندازه حضرت ابراهیم نبوده مزافن انسان مؤمن هرچیام که ایمان و تحملش بالا باشه دوست نداره که مورد آزار و شکنجه ظالمین قرار بگیره همونجوری که در قرآن کریم مواردی رو نه تنها از آزار بد بلکه که توهم آزار ببینیم بزرگواری عزیزی در قرآن کریم به این به خدا پناه میبره از این که مورد آزار باشه یا احتمال میده مثلا شکنجه و بدخواهی و ظلمی در کار باشه شما ملاحظه بفرمایید همین حضرت ابراهیم علیه السلام یه وقتی مهمانانی براشون ناخوانده آمدند حضرت ابراهیم عادتشون این بود که بدون مهمان غذا نمی‌خوردن و وقتی که مهمانیات بهترین پذیرایی رو ارائه می‌دادن خب طبق معمولشون برای پذیرایی بساط آبرومندی رو جور کردند گذاشتن جلوی مهمونه دیدن این مهمونه نمیخورند خب مرسوم بود اگر کسی میخواست به کسی آسیب برستانه از نان و نمک او نمیخورد به قول خودمون نمک گیر نشه اگه میخواد عذیتی آزار برستانه حضرت ابراهیم وقتی که این رو دیدن قرآن بفرماد فلام ما رعا عیدیه هم لا تستل و علیه هم و اوجست من خیفه دید دست به غذا نمی برند حضرت نگران شدند آن پیام, پیام رسانان الهی و رسولان الهی که فرشتگان خدا بودند قالو لا تخف انا ارستل نا الا قوم لوت ما انسان نیستیم از فرشتگانیم در غالب انسان و معمولیتون هم نزد قوم لوت هست خب بدونید اینها قصد شکنجه حضرت ابراهیم رو نشتن. اما تصور این که مباده اینها از کسانی باشن که اهل ظلم و آزار باشن حضرت ابراهیم ترسیدن و این طبیعی هم هست در باب حضرت موسا علا نبی جنب آلیب علیه دارد که فخرج منها خواهفن یا ترقق قال رب نجنی من القوم الظالمین وقتی حضرت موسا متوجه شد که فرعون قصد کشتن ایشون رو داره ایشون ترسار رو نگران شدن و در حالی که حوادث تلخی رو انتظار میکشیدن از شهر بیرون رفتند و در این حال میگفتن رب نجنی من القوم ظالمین در حضرت داوود هم دارد که ایشون وقتی در یک محل خلوتی تنها بودن فرشتگانی در قیافه انسان بدون خبر و غیر طبیعی بر ایشون وارد شدن قرآن میگه ازدخل و علا داوود و فضل عمن هم حضرت نگران شد و ترسید از این رقم ورود از این اشخاص قالو لا تخف اونها گفتن که نترس خب ملاحظه میفرمایید که خوف از شخص ناشناس طبیعی است تا چه به خوف از شر و آزار و شکنجه ظالمست تمگری مثل نمرود و معمورانش قرآن از بیان این نمونه ها این است که آزار و شکنجه ظالمین اگر انسان از این آزار به ترسه امر طبیعی است و به خاطر این خو... ترس و خوف به خدا انسان پناه ببره یه امر پسندیده و شرعی است به حضرت ابراهیم و همراهانشونم مستصرا از این قاعده نبودن پدر شهید سرفراد اسلام محسن حججی در مساحبهی که از شبکه اول استیما پخش شد گفت وقتی شنیدم که محسن از بیر شده خیلی ناراحت شدم چون میدونستم که داعش از ایران رو بد شکنجه میکنه و آزار سخت میده به اونها گفتلم به حال پسرم سوخت ولی وقت شنیدم او رو شهید کردن خوشحال شدم و خدا رو شکر کردم نه به خاطر اینه که پسرم رو کشتن بلکه به خاطر این که پسرم از شر شکنجه داعش نجات یافته خب حالا که سخن از استارت و شهادت این عزیزان به میان آمد یاد کنیم از کاروان و سرای اهل بیت علیه السلام این روزها به همراهی حضرت زین العابدین علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها در این بندگان صالح خدا را با استارت به سوی شام میبرند. این روزها برای اهل بیت روز سختی است یزیدیان مرکب سوار و اهل بیت در وضعیت دردناکی به سوی شام برده می شدن پیش این کاروان سرهای بریده شهدا رو می بردند. خودکان در جلو کاروان نگاهشون به این سرهای بریده میافتاد. افتاد گریه می کردن. ولی یزیدیان این کودک ها رو سیلی می زدن اونها رو باتی تازیانه می زدن در طول این مسیر ها حق گریه کردن نداشتند اجازه عزاداری نداشتند خیلی این مسیر کوفه تا شام بر اهل بیت سخت گذشت بر امام سجاد و امه ما زینب خیلی سخت گذشت ولی پایان سختتری در انتظار این استوانه کربلا بود اون هم وقتی بود که در مجلس یزید رعنت الله علی اینها رو با یه وضع اصف باری وارد کردن ریستوانی آورده بودن یکی بر بازوی حضرت سیندول آبدین علیه السلام یکی بر بازوی حضرت زیند بچه در این میان با حالت بسیار بدی وارد بر یزیده در معاویه شدن یزید بر تختی نشسته بود در برابر یزید تشت بود میان این تشت تلا سر حجت خدا سر بریده سید شهده السلام بود و در دست یزید یک چوبی بود در این هنگام صدای تلاوت قرآنی به گوش اهل مجلس رسید چه صدای زیبایی چه قاری عزیزی چه قاری کریمی. آیه قرآن تلاوت می کند ای که ناشنا بودن خیلی از این صحنه و از این صدا چگزدده شدن اما بچه های عبا عبدالله صدای پدر کنیده بودن خیلی خوشحال شدن صدای قاری قرآن بلند شد مردم شما وقتی قاری قرآن میخواند، هر هر ای که تلاوت میکنه چه اکسل عملی میدید میدید، تکبیر میگید، نام خدا رو بر زبان میآورید، اما یزید دید با این تلاوت قرآن تخت و سلطنتش تهدید می شود چه کرد عوض آن که این سر بریده و قرآن خواندنش رو تشبیق کنند دست به چوب خیزران بود در مقابل چشمانه خاور و فرزند و فرزندان و و سرا را بر آن لب‌های مبارک بیزت الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا ايمن غضبين قلبهار بدگار را شر کفار را و منافقین را به خودشان بازگردان مسلمانان جهان را در همه جبهه ها به پیروزی کامل برسان فرج مولا و سیدمان و آقای ما امام زمان را برسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ازا جاء نصر الله و و رعیت الناس يدخلون في دین الله افراجا فسبح بحمد ربك و استغفره انهو کان توابا صدق الله العلي العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والسلام لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله نصلی و نسلم على خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله اللهم صل على مولانا علي علی المؤمنين المؤمنین و رسول رب العالمین و على فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین صلى على الحسن والخسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى المرتضى ومحمد بن علي الجباد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلب الله عليه وعلى على آباءه الطاهرين تبربوا إلى الله بحذبهم والبراءه من اعدائهم السلام عليك يا سيدهنا و مولاتنا يا فاطمه المحسمه يا بنت موسى بجعفر بن و رحمه الله و باركاته عباد الله و نفسي بتبلف الله دين خود بنيز شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت می کنند عزت از جمله اوصافی است که همه اون را دوست دارند و ذلت از جمله اوصاف و رذائلی است که همه از آن گریزانند دانند عامل مهمی که عزت آفرین است تقوای الهی است حضرت مولانا امیر المؤمنین علیه, علیه السلام فرمودن از تقضا الفجور یو تقوا زت عزت آفرین و ارتکاب معاصی ظلت آفرین است در این خطبه ابتداعا به ذکر چند مناسبت و جمله کوتاه در زیلان میپردازم و بعد هم یک مطلب تحلیلی را تقدیم میکنم مناسبت اول روز پنجشنبه ویستومه مهما شهر مقدس قم میزبان هشت شهید گمنام در زمین و معروف و مشهور در ملکوت اعلی بود که سه از این شهدا در مدرسه علمیه معصومیه و بقیه امروز و طی روزهای آینده در سه نقطه دیگر استان قوم به خاک سپرده خواهند شد انسان وقتی جانش رو با خدا معامله میکنه ببینید چه برکتی پیدا میکنه در حیاتش مجاهد فی سبیل الله هست و بعد از کهادتش استخانه ها و مزارش مشعل راه و در ساموز و پیامرستان برای همه هست پس دعا کنیم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و عمتنا مماتهم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج شمبه 22 مهما روز جهانی استاندارد، استاندارد کردن برای کالاها بر مبنای علم و فناوری است و در پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد استاندارد هم به نفع مصرف کننده است هم به منافع تولید کنندگان کمک میکنه چون حیثیت و اعتبار تولید کنندگان به استاندارد است یک شنبه 23 مهرما دو مناسبت دارد شهادت پنجمین شهید مهراب عیت الله اشتفی اسفحانی به دست منافقین که در سال 1361 واقع شد مناسبت اول در این روز است امام از ایشون به عنوان کسی که دارای استفای نقص و آرامش روح و اطمینان است یاد فرمودن ما هم در این روز عزیز در این مصلا با شما نماز گزاران صلواتی رو هدیه روح متحریشان و امام و شهیدان و همه شهیدان اسلام می اللهم محمد و محمد مناسبت دیگر در 23 مهر جهانی نایان روز استایس سفید است اسای سفید در دست این روشندلان در واقع پرچم استقلال یک روشندله روز اسای سفید روز نابینایان روز ترحم نیست بلکه روز برسمیت رسمیت شناختن استقلال و حقوق نابی... نابینایان عزیز هست هدف از این نامگذاری آموختن تعامل با ناب... نابینایان روشندگان عزیز ما شهروندانی هستند با حقوق برابر که باید بتونند مانند دیگر شهروندان از امکانات عمومی استفاده کن روز دوشنبه 24 مهرماه مصادف با 25 محرم الحرام سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین و امام العارفین علی ابن الحسین سلام الله علیه در مدینه است که به دست عبدالملک مروان یا حشام بن عبدالملک اون بزرگوار مسموم و به درجه شهادت رسیدن حضرت باقر علیه السلام از قول پدرشان امام سجاد علیه السلام نقل کردند که پدرم زین العابدین وصیت فرمود ای پسر جان با پنج طبقه از مردم مصاحبت نکن که یکی از اینها اینه لا تسحبن فاسقن ف انهو یبیعو که به اکلت فما دونها با آدم های فاسق و گناهکار مصاحبت نکن زیرا اونها تو رو به یک لقمه بلکه که به کمتر از آن می پروشن در همین روز 24 مه روز پیوند اولیا و مربیان هم هست میدانید اولین فضای آموزشی و تربیتی کودکان منزل و پدر و مادر نقش اولین معلم و مربی رو دارن اما همین که بچه ها وارد مدرسه شدن به فضای مدرسه آمدن فضای آموزشی و تربیتی جدیدی برای اواش شکل میگیره. خب بدیهی است که، همکاری و هماهنگی بین این دو فضا رشد و تربیت صحیح و طبیعی بچه رو در پی داره بنابراین متصدیان مدارس و والدین از همکاری و همخزاری برای رشد فرزندانشون دریغ نکن مناسبت دیگر در 24 مه سال روز واقعی و آتش کشیدن وستیل جامعه کرمان به دست شیمان رژیم است در سال 1357 که یادآور دشمنی این رژیم منحوز با دین و ایمان و مقدسات و شعائر و مکانهای دین است و همچنین 24 مهمه روز جهانی غذاست خب این ملت عزیز ما ملت سر بلند ما با این امکانات طبیعی که دارن با این استعدادهای خدادادی که دارن نباید ملت ایران به خاطر تغذیه و تهیه مواد غذای اصلی خودشون به بیرون از مرزها نیازمند باشند. مدیریت و تدبیر میخواد روز چهار شنبه 26 ماه روز دادنی و ورزش هست که به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات و کاربرد ورزش در زندگی فردی اجتماعی این روز رو به این نام قرار دادن امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهای خودشون به خداوند عرض میکنن اللهم من اعتنی از صحت فی الجسم و القوت فی البدن به هار الانوار جلد 98 تقریه 91 اما آخرین مطلب مطلب تحلیلی جرایانی در عرصه داخلی در حال اجراست این جرایان بسیار خطرناک است جرایان زنی و بیهیسیت کردن مسئولان نظام در فضای بیدر و پیکر مجازی و دایت هاست. در این رابطه چند نکته رو تذکر میدم یک اتهام زنی از گناهان بزرگ است وجود مقدس صادق حال محمد علیه السلام فرمودن ازت تهم المؤمن و ان این ماستل ایمانو من قلبه کماین ماستل ملح فلما مشکات الانوار سخیه سیسد و نوزده شون فرمان که وقتی مؤمنی برادر خودش رو متهم میکنه ایمان در قلب او ذوب میشه همچون که نمک در آب ذوب میشه کسی که عادت به تهمت زنی میکنه، باید با دین و ایمان حافظی کنه کسی که داره اهل تهمت نیست به خصوص تهمت دادن به یک مؤمن به یک خدمت گذار دو آنچه که پادزهر این رزیله اخلاقی هست و رزیله رفتاری باور نکردن مردمه و نقل نکردن اون تهمت و شایه هست. شایع افکنان تهمتها رو را به زبان ها میندازن تا نقل بشه وقتی مردم باور نکردند و نقل شایعات رو دروغ دیدن شایع افکنان ناکام میمونن در روایتی وارد شده کفا بالمرء کهن ان یحدث کلا ما سمع این که انسان هر چیزی رو شنید نقل میکنه بعد شروع میکنه از فرماد این برای که دروغ باشه کفایت میکنه همین مقدار برکن خداوند در سوره مبارکی نور وزیفه مؤمنین رو نسبت به این اتهم زنی ها و اشخاص مشخص فرموده فرمود لولا از سمیع تموه زن المؤمنون و المؤمنات به انفعه خیرات چرا هنگامی که این تهمت رو شنیدن مؤمنین و مؤمنات به خودشون گمان خیر نبردن چرا تا علیه یک بزرگی شخصیتی محترمی انسان محمدی زن مرد یه جمله گفته میشه همه تلقی به قبول میکنن و این رو نعب میکنن قرآن توبیس کرده چه این افرادی رو و قال و حضا افت و مبین چرا در برابر شایع افکنان و این شایه نگفتین این کهمت و دروغی آشکار هست بنابراین انسان نباید هرچی رو شنید یا در فضای مجازی دید اون رو نقل کنه این مسئولیت دارسته در اول انقلاب دشمنان این مردم بازوان ولایت و ولی فقیه بازوهای امام و نظام نوپای اسلامی رو با ترور فیزیکی از نظام و جامعه گرفتن همچون شهید بهشتی شهید با حنر شهید و جایی شهدهای محراب و صدها شهید دیگر نقشه کنونی چینکوزان و بدخواهان نظام مردم اینه که نهادها را شخصیتهای موجود خدمتگذار و حامیه ولایت رو با اتهامات واهی بیهیستیت کنن و حرف و حرکتهای اخیر، و جمهور روانی آمریکا در همین رابطه ارزجابی میشه اونها میخوان سفاه مقتدر و عزیز رو با یک ترفند شخصیت های ارزشمند و مقاوم در برابر مفسدان و فتنگران رو با یک ترفند نهادهای دیگر انقلاب رو و های دیگر متهم کنن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خار در چشم استکبار و گروه های تکفیری و استخوان در گلوی بدخواهان اسلام و نظام هست رو متهم میکنن تروریسم مینامن اونها رو تحریم می‌کنن و به حمدالله ملاحظه فرمودید مسئولان نظام با دفاع جانانه از صفاه در این دشمنان ایستادند و حمایت کردند ولی در نهایت هدف اصلی از این زنی ها آتاب زدن به نظام اسلامی است ولی سخن قرآن به بدخواهان و کسانی که آرزوی نابودی این نظام رو دارن این است یوریدون ان یطفئوا نور الله با هم والله متم و الله ولو کرهل کافرون به کوری چشم دشمنان این انقلاب اسلامی امید داریم که این انقلاب الهی تا ظهور آقا و مولایمان ولیعصر ادامه پیدا کند <تصحنت> دنیا بدانند مردم و ارتش و سپاه و سایر قوای نظام ما برای رسیدن به زمان ظهور منجی عالم بشریت برای ریشه کردن شما کفار شما مشرکین شما منافقین شما زورگویان شما متجاوزین شما کسانی که انسانهای مظلوم را می و آواره می کنید نظام و نیروها و قوای نظام ما با آمادگی کامل و با زامت رهبر عظیم و, و فرماندهی معظم کل قوا برای نابوری شما لحظه شماری می کنند. اللهم عجل ولی الفرج و العافیت و اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات المؤمنات و المسلمین و المسلمات هر شر متجاوزین زورگویان به خصوص امریکای جهانخار و اسرائیل متجاوز و غاصب رو به خودشان برگردان وحدت و انسجام داخلی ما را روز به روز بیشتر و پایدارتر بگردان روح متحر امام، ارواح متحر شهیدان براجع مازین، امام جمعه فقیدمون حضرت الله مشکینی و رفتگان از اهلیمان ایمان را با اولیاءت محشور بگردان انس ما رو با قرآن و اطرت روزفزون بفرما ما رو مدیون خون شهیدان قرار مده خدایا و این جمع نماز گزار ما را برابرده به خیر بگردان مریزان اسلام جانبازان عزیز شفا و سب مرحمت بفرما ران رحمتت رو بر ما نازل و ما رشت گذار نعمت هات قرار بده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان لانسان لفی خوص الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تباسه بالحق و تباسه صدق الله العلی العظیم السلام علیکم و رحمت الله و